نگاه نویسنده فهیمه رجبی کارگردان محمد جواد بوستانی سازیگران به ترتیب اجرای نقش مریم یلدا فاطمه سبا شریف شرافتی فحیمه رجبی نصرت فاطمه خا، نادر محمد جواد بوستانی سعید محبی دوالی امویحیا محمد جواد دوستانی دایی نادر حسن زنفغاری زنمون الهام جلالی نگاه فاطمه محمدی نیستانی افکتر یله جلی تهیه شده توسط گروه نمایش نوبییان صداهای ما تا کسی نیومده به سراغ کتاب و برگه ها به نام خدا به سلام خونه هستی آه؟ حالا چه وقت اومدم بود؟ کجا؟ بذارم بهشون حالا کجا؟ ها حاصی بالشت. سلام بله بفرمایید خوش اومدی سلام وای خسته شدم تمام راه و دویدم. ببخشید فاطمه جون مزاحمتون شد او. نه مهمون رحمت خداست؟ بفرمای. ببین فاطمه جون من دلم نمیاد ببینم اینطوری برا دختر قصه میخوری شما مثل خواهر خودم اینم قسمت دختر من بوده که نابینا بشه از قصه این دختر دارم میمیرم تازه قسم درسم خود بخونه اگه مردم بفهمن در نابینا میشه آبرون میره باباش با درس خوندنش مخالفه منم گفتم هم که خوندن نوشتن یاد گرفتی که نمیذارم ادامه بده. به همه گفتم میره کلاس خیاتی خب شوهرش بده بره حرف مردمم دیگه نمیشنوی. آخه کی اینو با این شرایطش میگیره برای پسرش؟ راستش فاطمه جون مگه پسری رو میشناسم مادرش می‌خواد یه دختر مطی و بی زبون بهش بده دختر تو هم که اینطوری زبونش گوتاست شانستون گفته فردا میارمش ببینینش آخه خودش هم میدونه کی زیره بار اینطور دختر رو میره باشه به باباش میگه فردا بعد از ظهر میاد خدا برات خوب بخواد خواهر الای خیر ببینی خرافتی اون مشکلی داره انگار چشمت نمبینه عقلت هم داده یه جارا یه چی ها چهی حالا دلش برای خوبه حرف زیادی هم نزن. راست میگه دختر. حرفی دن تو بفهم هم که تو رو خواسته بر خدا رو خانم من راضیم هر وقت شما بگید ما هم برای مراسم آماده ایم به بخش مادر مجبور بود تو که می تو روستای ما حرف حرف مردا بابا ترسید که تو نگیره داد بایی نه ترس همه شو همی توریه یه مش آدم بد اخلاق گنده دما فقط طاقت بیا این بچت که اومد و حتما اوزاد بهترمش مادر من دیزش ندارم من احساسی بهش ندارم من نمیخوام نمیخوام نمیخوام استواج کنم <تصفيق> نه ای حرفو نظر تو باید به خونهاش بری هیچ هیچی نگو تو که نمیخوای منو بابات از نیشو های مردم دق کنی ها باشه ماما باشا قبول هر شما بگیم اما اما این نظر نیست چه دختر هم را دو زن پونزه سنگی که زواج بکنه حتی, حتی برایش لباس سفیده از روز هم نیارن تو رو به این آنون شمجون نگاه کن از گرد و که مردم نزد کجا از کجا اهم ات بری آوردنه آین همال مادر بزرگش بوده. نمیدونم گفتن رسمشونه یا خودش وصیت کرده که برای همه نوه ها از ای آینه استفاده بشه مهریتم هرچی گفتم بابات نزاش گفتن که قبول نکنیم اینم میره من جلو مردم خجالت میکشم چیکار خواه کنم ولی بدون تقصیر من نیست مریم خانم دوماد میخواد بیاد توی اتاق خاتم جون اجازه میگی؟ بله بفهمه سلام سلام آقا نادر آن ترسیدی؟ آخه دختر توشیده بنابینه که نازو ترس نداره <تصفح> توشیده؟ اما من همش پونده سلامه توی روستای ما دختر بزرگتر از نو پشت بخمونده حساب میشه تو هم که چشرتم ماشگل داره یه بدتر میتونی بشینی وقتی میگم تو این همه داری فقط باید بگی درسته و بالاتر از چشم نگی. بسن. پس رو حرف من حرف نزن چش؟ ولی نه پاشو بعد از من بشی هیچ وقت تو زندگی دیگه نه بعد از من حرف میزنی نمیشینی تا وقتی من وایسادم تو هم حق نشستن نداری تا وقتی هم من حرف میزنم خفه میشی مردی گفتن زنی گفتن بامام خدا بیامرز میگفت زن هیچ حالیش نیست ولی مرد خدا یعقله اما بابایتون ماله قدیما بوده. الان دیگه از این حرفا نیست. بابای من قدیمیه. آه! وای دختری دیوونه. چیکار کردی؟ چرا جیغ میزنی؟ اون زد تو هم من چیزی بهش نگفتم. بعد خودش افتاد رو زمین. نصرت خانم تو رو خدا. اون چشه؟ مگه بهت نگفتن اون سر داره. وایستا تا برم قرصاشو بیارم. تو هم برو لباساتو عوض کن. تا اون حالش خوب بشه. نه نه کسی به من چیزی نگفته. من چیزی نمیدونستم <تصفح> وای وای وای. دختری بیچاره اون شرافتی کسافت باید همه چیا به شما میگفت نداره. تو همه رو لباساتو عوض کن اون اگه به هوش بیاد دیگه چیزی یادش نیست <تصفح> اینجا چه خبره؟ چی شده؟ وای فاطمه راستشو بگو شما نمیدونستین نادر سر داره؟ سر؟ نه <تصفح> نیدی دیدی با دستهای خودت دخترتو بادپخش کردی. باد، باد این خوشبختیه. بیا ببینی که نیست منو از کسی مخفی کنی. همه نمیخوایدی. فکر کردی خوشبخت شد. نه باد بخش شد. نه بخشم. بخشم. پده چی شده تو رو خودم باشو غلط کردم نه نمیخوام گله کنم که سرنوشت من بده موقعی تا بازی چرا کسی نبود حلم بده باز نمیخوام گله کنم باز گله های بیخودی بازم بگم برای چی شب عروسیم نبودی برا تنگ شده بود ببین چقدر بزرگ شدم همونی که خواسته بودی بایستم رو پاهای خدا دلم برا تنگ شده و سر روی اکسات میذارم تو نیستی و حالا دیگه اکساتو خیلی دوست دارم دلم مرا تنگ شده و سر روی اکسات میذارم حس میکنم کنارمی چقدر رو دوست دارم سه ماه بعد ای ضعیفه گوش کن امشب فامیله من شام میان اینجا ما که برای عرصی بهشون شام ندادیم زود باش باید قذارم خودت بفزی حدودا چهل نفر ای <تصفح> تازه شب اینجا که جا نمیشیم وقتی میگم امشب یعنی خفشو یالله بینم حالا چه خاکی جوز ترم میکنم بیتر باشم برم مادر رو بیارم که نمیتونه که من میری. بیرم مادرم و بیارم من که از این همه کار بر نمیام برو ولی وای به حال درگه دیر بیایی قضاما کجا گذاشتی؟ تو اجاق تو بخونتا بیانزی برمی کرد ای خدا اه ای خدا از توی آسمونا گوش بده به درد من که میخوام حرف بزنم واسه یک روزم شده سکوتم رو بشکنم ای خدا خودت بگو واسه چی منو توی این زندونه برم چرا انداختی من چرا هر جا که میرم در برون بانه میشه چرا هر جادلیه میشکنه مثل شیشه ای خدا حرفی بزن اگه گوشت با منه این چیه که دلبمو داره آتیش میزنه چه کام کنی دختر از دست این نادر مادر خستم کرده اون از قورزدن هاش نغ اینم از اینکه یه روز نشده شده جمع کرده دوتی بده اومدم دنبالت بیام کمکم کنی خسته شدم خسته از دست این مرد نه ناشکری نکن تو تازه عروسی چه کام کنی رسمی عروس تا یه ما از خونه بیاد بیرون بودو بودو تو کس از تورنیده مردم مردم ما در خسته شدم بلم کنین. همش مردم مردم، هر کسی سرش به زندگی خودش گرمه. سلام فاطمه خانم خوش اومدین بفرمایید سلام نادید خوب مادر خوبه چی صدای چی بود مریه مریه من جمع کنم. خودم جمعش میکنم پاشو پاشو. پاشو کارتو نه نه نه نمیخواد کمک کنی خودم جمعش میکنم گذاشته اینجا مثل میشه؟ خوب شد اومدین وگه این به دست و پا برو برام نمیذاش دست سرم وردار نادر ولم کن ببینین همین طوره به جای حرف منو من تایید کنه بی تربیت میره بیرون. نادر. این قصد سرزنشش نکن. مثلا شما تازه عروس مادی. من سرزنشش نمیکنم. با ما خدا بیامرز مرز می مرد باید به زنش مرتب اشتباهاتش رو گوش زد کنه تا ازیادش نره. زن هیچ حالیش نیست. و اگه مردش کنارش نباشه زندگیش رو حواست. نه این حرفو نزن. نظر... مگه من مادرت نیستیم داریم با آبردار زندگی میکنیم؟ شما دیگه بیوه شدین. فرق نمیکنه چجوری زندگی کنی شما در فکر اون طرف باشی. این چه حرفیه. خدا با آدم زندگی بخشیده تا آخرین لحظه لذتشو ببره. نه تا یکی از دو طرف مرد. بشن عذا بگیره تا او یکیم بمیره. این من به خودتون رفته. من به مامانم گفتم بابای من و شوهر شما از دست زناشون مردن یا حالا بس با تو کن ندارم مریم قرصمو بیار تا از این پرزنده واره حالم بد نشده درمه از بابا شبا از درد کمر بند هر چون داشتی ناله بزنی مادر چرا مرد اینقدر بگن نه این حرفو رو همشونم که بد نیسته این سنت های ما که زنامونو له رو کرد ببین ما با هم تیر از مرسومات این تقدیر ماست مادر می‌خواستم خونه زن همسایه بهش پارچه بدم برام لوازم بدوز دخترش داشت کتاب می‌خوند موقع پس منو خانومه کتاب ازش گرفتم به صورت اموقچش خوندمش دخته دلش برام سوخت گفت میخوای برات کتاب بخونم بهش چیزی نگفتم از ترس این مرد نادر آخه بهم برام نمی‌ذاره می‌ترسم جلو آبروم رو ببره مادر اما دلم میخواد بیاد اینجا یه برام کتاب بخونه چه آدمای این روستا های اینجوری هن؟ چه درس خوندن برای دختر دختر عیبه؟ چه آدم 15 ساله نرسیده شوهرشون میدن و مثل من میگن ترشی درست هایی 15 سالشون بشه؟ نه مادر نمیخواد راش بدی تو خونه اون یه دختر جوونه شوهر تو هم جبون یه موقع میاد شوهر تو هم که از خدا خواسته زندگیت به هم میخوره کن حالا اونا که ای همه کتاب خوندم به کجا رسیدم. وای مادر چا نمیدونی که چقدر دلم میخواد یه نویسندش هم؟ دلم میخواد داستان زندگیمو رو بنویسم تا همه بدونن، تا همه بفهمن که دیگه زن مثل گذشته ها نیست، باید بهش بها داده بشه حق مای ما نیست توی چهار دیواری حبس بشیم هر روز به باد فخش و کتنگ گرفته بشیم های ضعیفه ماردی از این قرصی شا. خفشی اومدم تو سرم گیج مخوره مای وای. خاک بر سره مگه من خبر مرگت چقدر کار میکنم که اینجوری زندگی خود میکنی شد. نکنه ضعیف شدی نه ببینم تو بارداری دختر؟ وای نموادم من نمیخوام خدای من خدایا تو بده پاش چیش کاری نکردی مهمونات بیاد چیزی کم باشه نادر روزگارتو سیاه میکنه بعد یه کاری بکنید یه کتکت نزنه فردا بهش بگو بارداری امشب نگیا من رفتم تا برنج بشورم تو هم بیا مرغو پاک کنه. خورشت آماده کو بودو بودو آفری. نادرم اون چهر تو زنت کجاست؟ اما اون که چشوشه رو درست و نداره میترسم بیاد یه خرابکاری بکنه آبرون بره مهندش نزاره بدم بزاری که کار دیگه پس فیلم حد نیست کار بکنه زشته میشین تا خودش بیاد نه حالا شلا دفعه بد بهش میگم چهر نادا جون ای زن منو من رو اولش یه اومد توی خونه من تا اومد ناز کنه دو سه دفعه زدم تو هم باید میفته بکوبی تا همیشه راحت باشی. او سه دفعه حالشو بگیر دیگه موتیر میشه. این رسم و رسوماتونه که از زنتون یه حیوان ساختی که تو کتک نخوره حرف گوش نمیده. الان توی شهر زنا پا به پای مرداشون دارن کار میکنن. اول از همه این شوهراشونن که بهشون کمک میکنه. ساکت باش. تو هنوز ای چی از زندگی میفهمی؟ ببین بچه دیگه یاقی میشه جدا پدر مادرش وای میشه. ببین بچه این سنت ماست که با مرد مثل مسیع ارباب تو خونه رفتار بشه نادرجی تو قبولش نکن تازه اون زن چه نمیبینه باید خدا را هم شوک کنه که بعد از زاده من دلش برایش سوخته نداشته تو خونه بابا که از این های مردم بمیده اینو میگم و میرم اولا نادر چهار سال از من کوچیک پس اونم بچه است ثانیاً توی شهری روزی نفر ماشینش آورده و من تعمیر کنم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 ولی اون مرد با متانت کامل بهم گفتش که مشکلی نداره رفتم نشستم پشت فرمون یه چیزی که خیلی تکان داد این بود که اون زن علاوه بر اینکه تو بغلش یه بچه بود شوهرش سرش پنجره ماشین کرده و تو روی زن و واچش پاتوم انداخت و, و سرما خورن من دارو باز کرده بودم داشتم درستش میکردم شوهر دوید چند تا آب میوه و شکلات خرید داد به زنشونم به من تعارف کرد اون عاشق زنش بود وقتی کارم تموم شد از مرد پرسیدم یک سال میپرسم فقط صادقانه جواب بده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 صدای صدا زن منو که بار آخره بزار ببینم قرار آخره برای بار آخرم شد. بخ بخوان دو چشم و یه قشنگ تو برام بیا به جرم عاشقی با کش من رو نگاه کنیم نه نهی فزار و, و خسته رو. تو به جون خاطرات خوبمون بمون تو را به جون خاطرات تلخمون نرو بیا براحتم کن از نگاه آدم نظر بگیر دامنم آدم به گوش را آدم بگو چرا باید به سوز لحظه های من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 موازه باش نری زیا اصلا تو برو بشین من نصرت خانم قضا رو بکشم آره نه تو نمیخواد کاری بکنیم بتر میزنی همه چی رو خراب میکنی برو بشه مهمون در اولا نادر نه، آقا نادر زنده گفته برای مهمونی باید دونو رو به پخته بشه خجالت کشیدم نه تو رو خدا، بخونه الکی نه الان صدامون میره بیرون مهمونمیش نود تو رو خدا نادر زشته. من که از رئیس ما روش نمیدونستم خب، خب این دفعه درست می میکنم نه دارو نکن نکن حالا آدمت میبونم بزر دهن تو ببندم تا بیشتر از این آبرومو نبری آهان حالا شد فاطمه خانم نادر کجاست نیست شنگار رفت طرفه آشپس کنه نمیتونم یعنی چی شده؟ دروش پس خونه بسته است. بودو نکنی وقت بزنندش. ببخشید ما الان برمیگردم. نادر مریه درو باز کنی چی شده؟ چیکار کردی نادر؟ مگه تو دیوونه شدی؟ این به جای دست درد نکنتته؟ مرگ من مادر بر بمیره چی شده؟ ببیننس ببین پسر وحشیت با یه دونه دخترم چی کردی؟ دست خودت چی شده؟ بهش گفتم ببریم سر صفره پرید گازم گرفت، اگه زده بودمش برم نمی تو اینقدر شی که وایسادی اون بزن تو تو هیچکاری نتونی برای خودت انجام بدی؟ مگه میشه؟ آه. آه. میگه میگه زنده اش گفته بهش باید دون دونو باشه آه. مریم از خارج دخترم مریم من بلای شما ده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 مریم به خاطر بچت کنار بیا با این قضیه بسته دیگه پاشه بریم وگرنه با زور میبرم اتا باده من دمه درم ببینید نصرت خانوم این نهایت محبتش همینه یا زور یا کتک تهش به خاطر بچم باشه اما فقط یک بار دیگه اگر یک بار دیگه دستش رو من دراز بشه دیگه تو این زندگی نمیمونم وقتی کلاب خنده. بقید یه تصویره چیزی نمیبینی چیزی نمیفهمی گریت نمیگیره دیگه نمیشناسی هوای بیرونو خیس میشی میشیم و اصلا نمیفهمی معنی بارونو جنس نگاه تو عریب و مفرمه ترس جدا شدن میون ما کمه کنارمی می ولیی توریه عالمه بی حرکت شدی بسلم مسلم اجاسم کیه اومدم آقا سعید شما این سلام خوبید چه عجب از این طرفا سلام مریم خانم از مادرم شنیدم حالتون خوب نیست اومدم احوال فرسی بخشید میگفت باردارید ممنون هفت ماهی شده روزایی که دنبال دختر برای نادر بودم، من بهشون میگفتم این دختر چه گناهی کرده که زن این اصابی مریض بشه اینم سرنوشت من بوده آقا سعید خوبی از نداره جلو در بریستین همسایی ها چغلی منو به نادر میکنن اونم میاد منو میگیره به مشت دلگت من میدونم این مرتکه بیمسیدیت براتون محال چیز بخاره که تقوییت بشین یکم گوشت و خریدم بخورید. شاید اون بچه دیگه زیری دسته این بابایی که حتماً هم میزنه زعرف نکنه. بگیر مامانتون آورده یکی هم بهش گفت که منو دیده بگید باش کار داشتم خونه نبوده. این دفعه باش آواسین اما تو رو خدا دیگه این کارو نکنین. میترسم نادر بهم شک کنه. بازم شروع کنه به فحش و بعد و بیراه. بازم منو به این و اون استغفر الله. تو رو خودا تو رو خدا دیگه این کارو نکنین. الان هم که زحمتشو کشیدین تا اینجا آوردین من ازتون برمیدارم فقط بذارینش تو در زودی برین ازتون خواهش میکنم بذاری دستو ماشین بیارم چطوری؟ کم کم پدر میشی یا پسرممه؟ بله ولی تو بیا عرضه ای تو هم باید یکی رو پیدا کنی باید به زندایی بگم داری پیر میشی یا؟ نه فا از کسی خوشم نیومده. نادر مواظ به زننت باشون به غرس تو کسیو نداره. اینقدر نزنش به خدا گناه داره بنده خدا قم بیناییش کمه تو هم میزنیش حواسم بهش هست. حالا یکم کم تنبلی میکنه چیزش چیزیش نمیگم چون داره. ولی اگه بعدش انقدر دیر چای بیاره حالش رو تو رو خدا زحمت نکشید برایم خانم راستی سعید اما یحیی خونه کناریمونو خریده تا یه ماه دیگه هم میام بشینه آه آقا آقای و زنش نمیتونن خوشی رو به کسی ببینن یه موقع نکنه بر گوش بدی و زن تو بزنی عقلتو به کار بندا تصمیم بگیر حالا چقدر سنگ زنه منو به سینه‌ت میزنی مرتی که به تو چه ربطی داره من قصد جسارت نداشتم فقط از روی دلسوزی همین برو واسه ننت دلسوزی کن حالا میکشمت که دیگه حرف دهانت رو بفهمی بیش شعور منو میدونی حالا درسته؟ وای مرد کشش کشش کشش ویدیش کن ویدیش کن مدید مدید اما زیبلم کن از بزار رفت بخت یادش نمیشه تو <تصفيق> چه ای یوسن ای خاطره من معلوم نم چه بلهی سر من و چند می اومد خدا خواست من اونجا باشم واقعا خدا به چه آدمایی هایی بچه هم بریم خانم یه سال بپرسم جوابم میدی. یه بپرسید دوستش دارید؟ یه میگین آقا سعید رو میگم حقیقتش رو بگم نه هیچ علاقه بهش ندارم آخه خب اگه میشه بهش گفت پدر توی این همه مدت که بچه به دنیا اومد حتی نکرد یه بار بیاد ببینه خیلی دلم میخواست بیاد و به همه که مادر در اون اقل مبرک بعد یه ماه نمیخوای برش اسم انتخاب کنی حالا دیگه حال وچهت خوبه دکتر را اجازه دادم برش خونه انتخاب کردم اما اگه نادر مخالفت بکنه دیگه نمیدونم چیکار کنم خیلی دلم میخواد اسمشو بذارم نگاه بشنگه بشنگه ولی چرا نگاه؟ همه یز تختی همو به خاطر نداشتن نگاه کشیدم شاید اگه میدیدم هرگز منو به نادر نمیدادم شایدم نادر به خاطر ندیدنمه که داره زر جون کشه و اخته اینجوری اینجوره نشون میده نمیدونم واقعا نمیدونم درسته این آدمای کوتاه فکر فقط جنس زن رو تحقیر میکنن کس هم نمیتونه بهشون بگه بابا جون زنم یه انسان احساس داره حالا با همه اعضا یا بدون یکی از اعضای بدن ولی به هر حال انسانه اون هیچ اهمیتی به من نمیده خودتون شاهدین توی مدتی که اومدم خونه شما به خاطر شرایط بچه‌م نکرد تماس بگیره من به درک حتی حداقل اصال با خبر بشه چه میخواین برگردین خونه دیگه برمی گرفتن به اگه روزی تصمیم گرفتی که ازش جداشی بدون من میام باهات ازدواج کنم با هر چی که در وجودته من نیازه دلسوزی و ترحوم ندارم بچه و زندگیمو دوست دارم به همین قرآن منتظرت میمونم تا ثابت کنم دلسوزی و ترحوم نیست اما اما اما شما چما, چما حقیقت خیلی بیشتر از این چیزاست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 بهت قول میدم از حالا تا روزی که نفس دارم تموم قلبم و بایش به دستای تو بسپارم بهت قول میدم از حالا چه تو شادی چه تو ها اری که لحظه هات باشم بزم مستا تحت دنیا من نگاهی ترانی رو خوم روی ماه ترانی خم آسمون رو دست کشم بی گناه ترانی خم من نگاهی A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 البته گفته بازم اگه تو موافقت کنی اوه. یه باره میذاش نگاه آخه اسم من که میگم دختر اصلا نمیخوام اسمشون بدونم چه برسه به اینکه که صداش کنم برید از خونم بیرون اون مادرم ببر مهمونی تموم شوف من دیگه سعید نیستم هری هر روم سیاه مادر ببخشید شما نیست تقصیر پدرشه که اینطور پر کرده واسه جلو شما و این حرفا رو بزنه مریم مادر قصه نخور خدا بزرگی برای منم نراحت نشو هرچی باشه باید تحملش که نگران نباشید مادر حرف به حرفش نمیرم خیالتون راحت ما دیگه میری میا بریم نصرت خواهی مواظب بچت باش هر وقت رفت سر کار ما میان میبینیم ایش لالا <متصفح> کن دختر زیبای شبنه لالا کن روی زانوی شغایق به تا رنگ بیمهری نبینی تو بیداری که تلخه غایق چه کبریشون هاش چه کی دم سرم گرم من بازش های اون بود که خوابم برد و کوچه شون ندید حالا من موندم و یک خلوت که سخفش خریبی چه که کرده تلات با باجه جدایم زده کاشونم و که که کرده دلم میخواست و سرزون خواهر شیری چشمم به دنیا آقا نمیشون میونه قلبم تو کم نشونی دیگه از خاطر پیدا نمیشون صدام غمگینه از بس گروه کردم ازم هیچ اسم و ایچ آوازه نمی پرس کسی هی در چه خبر از آشنای تازهی سال بعد ماما جونم مامانی جونم بابا با یه دختر دربانهی رفت اتاقه اما احیا خب خیلی تو کشید تا بیرون نفهمیدی دختره کی بود مامان برشون خانون دربانه رفت تو اتاق دیگه بابا هم خندون اومد بیرون خاک تو سرا حالا حق این زنه رو بذارم کف دستش. زنی که بی هیا. زنم رفت دنبال خانومه. به که چی شده؟ خانم خنده گفت از خوش بپرسی. پاشون می تو زندگی من؟ بابام خنده گفت. قد من چه میشه. داره زندگی من رو از هم پاشونه؟ نه ولی خانومه میگفت مریم میمیره که بشنوه بهش گفتم مامان منو میگی در تو گفت برای گم شد خونتون بچه فوزو زنم اوی بی هیا حقشو میذارم کف دستش من آمدم دوباره بابا رفت به شون باید کن کارت دارم چته سر آوردی؟ نگاه گفته یه زن جوان رو بنادار کردی تو اتاق راست میگه؟ دروغ گفته بچه هست خره نمیفهمه چه من نیست خودم از لبه دیوار دیدم فقط چهره شو ندیدم افشو تو شوهرداری بلد نیستی تقصیر من نذار اگه هرس نزنی با همین مهات تا وسط گوچه میکشمت اونقدر میزنمت تا زیر دستم جون بدی زنی که کمک آی همسایه ها کمک کنید این میخواد منو بکشه کمک مادر نادر اومد یه دختر نابینا بندش کرد چقدر بهش گفتم بذار دو ماده من بشه گفت دخترت زشته دخترت زبونداره داره دخترت ال بله منم چند وقته پیش عقدشون کردم تا چشمتون در بیاد اونا هم میان خونه ما هم دیگر رو میبینن تا چند وقت دیگه هم بچه دار میشن خدا نگذره که این کارو با من کردی امت قامت برام سر دخترت بیاره من عاشق صداقت تو عاشق خیانت هر دو این دو رنگی جوری کردیم راه منو تو اینجا از هم دیگه جدا شد تو باشه یه خوشت یه خواب راست کاش و سه چشمت بیگنا بود وای هرچی خوبه راجه به تو اشتباه بود من میرم از این زندگی از پیش چشما تو هم ببون با کل دنیا تو درو واقعا خدا تو رو برام رسونده بدون تو اصلا نمیدونم چطور باید زندگی میکردم نه فرهنگ های اشتباه باعث سختی کشیدن آدم های میشه نصرت خانم بیچارهم که جاریش دقش داد دلم برای اون تفلک میسوخت دخترموشم هم که دیدی بچه دار نشد خوب شد ما از اونجا کندیم و اومدیم اما دلم واسه همه زنای دیگه ای می میسوزه که مثل من را اسیر بودن و هیچ آینده ای شاید در انتظارشون نبود نه دوره عوض شده مردمون روستا هم حتی فهمیدن که نباید سرخود برای کسی تصمیم میگیرن ساعت چند میری کلینیک؟ امروز چند تا دارم اما خوب میرم حالا این روان شناس شدنم برای خودش سعید آلمی داره. هیچ وقت فکر نمی کردم. یه روزی بهتونم بله. به آرزون برسم. خیلی خوشحالم. خیلی خوشحال. میارزید. میارزید به تمام اون سختی هایی که تحمل کردم. واقعا سعید فعید میارزید. وای ببخشید ما در این بحشون خیلی خستت کردن. همش بهت آویزونن. همش میخوان هر جا که میری با حد بیان. نه مادر. منم دیگه پیر شدم. با اینا سرگرم. ولی یا که واسه خودش امید و امیر جلو. چند دیگه. اما این نگاه واسه خودش خانوم شده. وشن پا به پای من را خانمش به مادرش رفته. خانم. آقا سعید. من فقط از خدا خوشبختی مریم رو میخواستم. حالا که میبینم انقدر خوشبخت شده. دیگه هیچ از خدا نمیخواد. برم از این که اینقدر خوشبخت شدم خدا رو شکر میکنم نگاه بابا سب کنه الان میام تا دانشگاه میرسونمت رفتیم که رفتیم باید باور کنم یا توی خوابم یا بیداری محاله همه تو دستان داری دستاتو تو میذاری چقدر دور بود پرداشتن تو اون روزای تن شاید را یا استبلی حالا کنار من همین جایی من نگاه ترمیم رو خواهم روی ماه ترمیم رو خام آسمان go